دوستان سلام و به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. کتاب خروج دریافت نجات رو به تصویر می‌کشه و تسنیه نمایانگر پاداش نجاته و بعد کتاب اعداد تصویری از دوره سرگردانی و سرخوردگی ماست که گاهی بین نجات و لذت بردن حقیقی از پاداش نجاتمون رو تجربه می کنیم. معلم ما امروز خلاصه ای از کتاب اعداد رو در درس امروز به ما خواهد داد و ما نگاهی به دو مرد و یک حقیقت جالب خواهیم انداخت. سلام، خیلی خوشحالم که باز هم به شما خوش آمد میگم. ضمن بررسی عهد قدیم، کتاب پیدایش، خروج و لاویان رو پشت سر گذاشتیم و حالا به کتاب اعداد میرسیم. اینجا یه داستان تاریخی رو انتخاب کردیم که در کتاب خروج اون رو دیده بودیم. این داستان تاریخی از کتاب پیدایش شروع شده و تا دو سوم کتاب خروج ادامه پیدا کرد. وقتی به خصوصیات ساخت خیمه پرستش در کتاب خروج رسیدیم، شما رشته کلام از دستتون در رفت. وقتی کتاب اعداد رو میخونید، دوباره باز به اون داستان میرسید. کتاب اعداد راجع به یه دوره 40 ساله از تاریخ قوم یهود با ما صحبت میکنه. این بخش از تاریخ قوم یهود میتونست پیش نیاد. تمثیلی از نجات هست که از پیدایش شروع شده. و در کتاب‌های تاریخ ادامه پیدا کرده. داستان از این قراره که در کتاب پیدایش شما منشأ نجاتمون رو میبینید. سقوط انسان رو میبینید که از شخصیت انسان سرچشمه میگیره. پیدایش سه شخصیت مرد را آنگونه که بود و آنگونه که هست توضیح میده. همچنین در کتاب پیدایش گفته شده که نجات ما از شخصیت خدا سرچشمه میگیره. همون طور که بود و همون طور که هست عنوان کتاب پیدایش به معنی آغاز هست. که از کلمه ی ژنتیک گرفته شده کتاب پیدایش در مورد آغازها صحبت میکنه یا سرچشمه نجات ما کتاب خروج تمثیلی از نجات ما داره و به ما میگه که نجات ما شبیه نجات قوم اسرائیل از بردگی در مصر بود همونطور که اونها نجات از بردگی مصر رو تجربه کردن من و شما هم میتونیم از بردگی گناه آزاد بشیم بسیاری از ما کاری رو که میخوایم بکنیم نمیکنیم ما کاری رو که نیاز داریم انجام میدیم این نشون میده که ما آزاد نیستیم تعداد اندکی از انسان ها واقعا واقعا آزادند به ما گفته که اگر مرتبا گناه کنیم ما بردگان گناهیم اما اون نجاتی رو موعظه میکنه که میتونه ما رو آزاد کنه به قول عیسی وقتی نجات ما رو آزاد میکنه ما در حقیقت آزاد میشیم نجات برای ما به طور تمثیلی در کتاب خروج وقتی که خدا قومش رو از بردگی مصر نجات میده به تصویر کشیده شده نخشه این بود که وقتی اونها از مصر نجات یافتند، باید به سرزمین کنعان می‌رفتند. خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب گفت که این سرزمین خاص رو برای اونها مهیا کرده. ما به اون سرزمین وعده می‌گی. اون زمینی بود که شیر و شهد در اون جاری بود. اون سرزمینی حاصل خیز و پرسمر بود. اونها باید وارد سرزمین وعده می شدن. وقتی ما از بردگی گناه آزاد شدیم یا بندگی گناه اون نجات در همون جا خاتمه پیدا نمی کنه. اون نجات یک پایانی هم داره. ما از گناه آزاد شدیم اما ما به خاطر چیزی نجات پیدا کردیم که عیسی به اون فراوانی حیات میگه. من آمدهم تا شما حیات به فراوانی داشته باشید. به زبان تمثیلی این سرزمین وعده ماست. ما قرار هست که وارد سرزمین وعده فراوانی حیات بشیم یا فراوانی زندگی مسیحی. کتاب اعداد در مورد پرانتزی بین آزادی از مصر و ورود به سرزمین وعده یا کنعان صحبت میکنه. اونا مستقیما از مصر به کنعان نرفتن. کتاب اعداد به ما میگه که اونها به مدت چهل سال در بیابان سرگردان شدند. متاسفانه باید بگم این تمثیلی از زندگی بسیاری از مدعیان مسیحیته. کسانی که امروزه در کلیساهای ما حضور دارند در واقع با ایمان به انجیل عیسی مسیح اونها از پاداش و قدرت گناهشون آزاد شدند. همونطور که ما در تصویر کتاب خروج و لاویان دیدیم، اونها از پاداش و قدرت گناهشون آزاد شدند، اما به فراوانی حیات پی نبردند. اونها فراوانی زندگی ندارند، اونها افسرده و خسته و ناراضی و ناموفق هستند. اونها وارد سرزمین وعده نشدند. به طور تمثیلی وارد سرزمین فراوانی مسیحی نشدند، بلکه اونها سرگردان هستند. سرگردان در ناباوری، در سرخوردگی، در آشفتگی، به طور تمثیلی کتاب اعداد و تاریخی قوم یهود رو برای ما مثال میزنه. ما آرزو میکنیم که کاش حقیقت نداشت، اما این حقیقتیه که اکثر کسانی که نجات پیدا میکنن تجربه میکنن. ما نجات خودمون رو به لحاظ تاریخی و تمثیلی به موازات هم در اولین کتاب کتاب مقدس از داستان قوم یهود میبینیم. وقتی که به کتاب اعداد می‌رسیم و بر اون تمرکز می‌کنیم، میخوام که دوباره بعضی قوانین کتاب مقدس رو که در مقدمه بررسی عهد قدیم براتون ذکر کردم یادآوری کنم. مهمه که بدونیم چطور به کتاب و مقدس نگاه کنیم. یکی از اهداف اساسی این دوره مطالعه کتاب مقدس اینه که دیدگاهی از کتاب و مقدس به شما بده. ضمن بررسی کتاب اعداد میخوایم بعضی از این قوانین بررسی کتاب مقدس رو مرور کنیم. اولا در یوحنا باب 17 آیه 17 عیسی با کلامی ساده به ما گفته که چطور به کتاب مقدس نگاه کنیم. کلام تو حقیقت است. این جمله بسیار زیباییه که میتونه کتاب مقدس رو برای ما باز کنه و به ما نشون بده که با چه دیدگاهی به کتاب مقدس نزدیک بشیم. کلام تو حقیقت است. اگه بتونید از چیزی که عیسی میگه برداشت درستی داشته باشید، اون وقت در کتاب مقدس دنبال حقایق خواهید گشت. وقتی که کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنید نباید سبک ادبی اون فکر شما رو مشغول بکنه بلکه دنبال حقیقتی باشید که در اون هست اغلب اوقات وقتی مردم کتاب مقدس رو می‌خونن اولین چیزی که باش سر و کله می‌زنن اینه که سبک ادبی کتاب مقدسی که دارم می‌خونم چطوریه همونطور که بارها گفتیم شما باید با این سوالات به کتاب مقدس نگاه کنید اون چی میگه معنی اون چیه برای من چه معنی داره به عبارت دیگه من به کتاب مقدس نگاه نمی کنم که از سبک ادبی اون بحث کنم بلکه نگاه می کنم تا حقایقی رو که می آموزه پیدا کنم صرف نظر از اینکه سبک ادبیش چطور میتونه باشه اگر اون چیزی که عیسی گفت برای شما باز شده باشه اون میتونه کتاب مقدس رو برای شما باز کنه قانون دوم نگاه کردن به کتاب مقدس یوحنا باب 7 آیه 17 است اگه شما به کتاب مقدس نگاه کنید و دنبال حقیقت باشید و اگه بخواید از اون حقیقت اطاعت کنید اگه بخواید اون حقیقت رو بپذیرید و به کار بگیرید و با به کار گرفتن حقیقت آگاهی هم خواهد اومد. اگه مایل باشید این کارو بکنید پس اونو خواهید فهمید اگه چیزی رو که میگه انجام بدید و خواهید فهمید که اون کلام خداست و حقیقتی است که از خدا میاد و به شما نشون میده چطور زندگی کنید وقتی این دو مورد یوحنا 17, 17 و هفت 17 رو کنار هم قرار بدید اونها به شما نگرشی از کتاب مقدس خواهند داد بیاید به دنبال حقیقت بگردید و قبل از اون تصمیم بگیرید وقتی خدا حقیقت رو نشون داد اون حقیقت رو در زندگیتون به کار بگیرید در مزمور 119 آیه 160 میگه تمامی کلام تو حقیقت است اون به ما دید گاه دیگری میده که چطور به کتاب مقدس نزدیک بشیم بیایید و دنبال حقیقت ضروری بگردید حواستون رو با موضوعات جانبی و چیزهای کوچک پرت نکنید بیایید و دنبال حقیقت بزرگ بگردید. بیایید تا وقتی خدا اون حقیقت بزرگ رو به شما نشون میده، از اون اطاعت کنید. یکی دیگه از اصول مهم برای مطالعه کلام خدا مخصوصاً در این قسمت از کتاب مقدس اینه که به یاد داشته باشید همه این چیزها عملاً اتفاق افتادند. اینا داستان نیستند. این چیزها برای این قوم اتفاق افتادن تا نمونه‌ها و هشدارهایی برای ما و شما باشند. پس به این نمونه‌ها و هشدارها از دید داستان تاریخی نگاه کنید. بعد یادتون باشه که این وقایع تاریخی میتونن اهمیت تمثیلی داشته باشند بدون اینکه چیزی از تاریخ بودن و اونها کم بشه. این اثر بر مبنای آیه 24 باب چهار غلاتیان بنا شده. اونجا که پولس اشاره میکنه که ابراهیم دو پسر داشت. پولس میگه این یک تمثیله. واضحه که این تاریخه اما به طور بارزی تمثیلی با حقیقتی عمیق روحانیه. از این جهت دوباره این اصول رو به شما گفتم چون وقتی به کتاب اعداد می‌رسیم خیلی مهمه که دنبال حقایق بگردیم وقتی به کتاب حیرت انگیز اعداد می‌رسیم با نگاه کردن به حقیقت تصمیم میگیریم که اون حقیقت رو در زندگیمون بپذیریم همین که به این کتاب می‌رسیم که سرتاسر سر اون وقایع تاریخیه مهم مینه که دنبال حقیقت بزرگ بگردیم ما میتونیم به شکل مثال‌ها و هشدارها دنبال اون حقیقت بگردیم همینطور میفهمیم می‌فهمیم که این کتاب به غیر از جنبه تاریخی، جنبه تمثیلی زیبایی هم داره. مایلم که تعریف تمثیل رو به شما یادآوری کنم. یک تمثیل شرح چیزی تحت تأثیر تصویر دیگریه یا تمثیل داستانی که در اون اشخاص، محلها و وقایع معانی دیگری هم دارند. اغلب از نظر اخلاقی آموزنده با چنین تعریفی از تمثیل به کتاب اعداد نزدیک بشید و دنبال حقیقتی که در اون جنبه تمثیلی هست بگردید. من فکر میکنم بسیاری از اونها رو در این کتاب خواهید یافت. همینطور در کتاب اعداد دنبال حقایق جالب هم بگردید. وقتی به کتاب اعداد نگاه میکنید، اونطوری که گفتیم به اون نگاه کنید. دنبال حقیقتی بگردید که نه تنها تمثیلی، بلکه جالب هم باشه. به عقیده من کتاب اعداد یکی از حیرت کتاب کتاب‌ها در کتاب مقدسه. من اغلب وقتی کتاب مقدس رو بررسی میکنم میگم که این کتاب بزرگترین کتاب کتاب مقدسه. این کتاب مورد علاقه منه. من از این نظر نمیگم که کتاب اعداد کتاب علاقه منه چون که الان میخوایم اون مطالعه کنیم کتاب اعداد کتابی نیست که من ترجیح بدم بیش از هر کتاب دیگری اون تدریس کنم چون که کتاب اعداد کتاب مهیبیه وقتی بیایید و دنبال حقیقت بگردید و بخواید که اون رو توی زندگیتون بپذیرید، خواهید فهمید که پیغام کتاب اعداد حقیقتی مهیب و تمثیلیه خواهید فهمید که پیغام کتاب اعداد حقیقتی ترسناک تمثیلی و جالبه برای مثال کتاب اعداد اسمش رو از این واقعیت گرفته که در طی اون مردم دو بار سرشماری شدند یک سرشماری در سباب اول کتاب اعداد هست و سرشماری دوم در باب 26م بین اولین و دومین سرشماری واقعیتی جالب خواهید یافت مرگ نسل رو خواهید دید وقتی که سرشماری اول انجام گرفت 625550 نفر بودند علاوه زنان و کودکان هم بودند که روی هم رفته بین دو تا سه میلیون نفر بودن. فقط مردان بالای 20 سال شمرده شدند و 625 هزار و نفر شدند. این جالبه که اونا فقط افراد بالای 20 سال رو شمردند که این سن سن پاسخگویی هست. من نمیدونم که ما از کجا سن دوازده سالگی رو برای پاسخگویی آوردیم. عیسی وقتی دوازده ساله بود به معبد رفت. این تنها باریه که کتاب مقدس به دوازده سالگی اشاره میکنه. این سن هرگز در کتاب مقدس در ارتباط با پاسخگویی ذکر نشده بلکه این سن حدود بالای بیست سالگیه که بارها در کتاب مقدس اشاره شده حدود سیزده بار سن بیست یک سالگی در رابطه با پاسخگویی ذکر شده فقط اونهای که بالای بیست سالگی بودند شمرده شدند. این جاییه که ما از اون برداشت می که سن پاسخگویی یا مسئولیت پذیری سن بیست و یک سالگیه وقتی چهل سال بعد دومین سرشماری انجام شد 624730 نفر مرد بالای سن 21 سالگی بودند حالا اینجا حقیقت جالبی هست وقتی دومین سرشماری انجام شد تمامی کسانی که 38 سال قبل سرشماری شده بودند مرده بودند به جز کالی و یوشا تمامی مردان بالای 20 سال و همسران آنها مرده بودند این حقیقت بسیار جالبیه که شما در کتاب اعداد میبینید. اگر به کتاب اعداد و به دلیل مرگ این افراد و نحوه مردن اونها نگاه کنید به حقیقتی برمیخورید که نه تنها تمثیلی و جالبه بلکه به حقیقتی می‌رسید که ترسناکه نه. به خاطر اینکه ایمان نداشتند که خدا وعده هاش رو انجام خواهد داد خدا گفت شما در این بیابان خواهید مرد تمامی شما 20 ها و بالاتر که شمرده شدید چون بر من هم همه کردید لاشه های شما در این بیابان خواهد افتاد و هیچ کدام وارد سرزمین وعده نخواهید شد به جز کالی و یوشه که میتونن وارد سرزمین وعده بشن شما گفتید که کودکان شما به یغما خواهند رفت اما من اونها رو در امنیت کامل وارد سرزمین وعده خواهم کرد اونها چیزی رو به ارث خواهند برد که شما خارش شمردید شما چهل سال در این بیابان سرگردان خواهید شد به این ترتیب شما کفاره بی ایمانیتون رو با مرگ خودتون در بیابان خواهید پرداخت من به شما نشان خواهم داد که رد کردن من یعنی چی همه شما در این بیابان خواهید مرد بقیده من جالبترین باب کتاب اعداد باب چهارده هست. وقتی به باب چهارده می‌رسید این قوم در بیابان سرگردان هستند بارها و بارها خدا سعی کرد به اونها ثابت کنه که با اونها هست او معجزاتی برای اونها انجام داد سعی کرد زیربنایی برای ایمان اونها بسازه سعی کرد به اونها ایمانی بده که باور کنند میتونن از رود اردن عبور کنند و به سرزمین کنان حمله کنند. شاید تعجب کنید که چرا اونها مستقیما از طریق مصر از جوشن به کنان نرفتند و مستقیما از عریها عبور نکردند. به جای اون از مصر خارج شدند، و از جوشن خارج شدند، و از دریای سرخ عبور کردند و پایین به سمت کوه سینا رفتن و به قادش برنی رفتن و بعد چهل سال اونجا دور خودشون چرخیدن. در ابتدای کتاب تسنیه میگه که اونها میتونستن اون راه رو یازده روزه طی کنن که مستقیما از مصر به کنعان برن چرا این کارو نکردن خب اون فقط یک راهپیمایی ساده از جایی به جای دیگه نبود قوم دشمن سرزمین کنعان رو در تصرف داشتن جسارت زیادی برای انجام این کار نیاز بود و این مردم جسارت زیادی نیاز داشتند که به سرزمین کنعان حمله کنن هرچند به اونها فرمان داده شده بود که حمله کنند. به این دلیل اونها مستقیم نرفتند اونها ایمان کافی برای حمله به سرزمین وعده رو نداشتند ده بار خدا میگه معجزات خارق برای اونها ترتیب داده و سعی کرده که به اونها زیربنایی از ایمان بده تا اینکه ایمان کافی برای هجوم به سرزمین کنعان داشته باشن. اما اونها فقط دور خودشون میگشتند. چندین بار مرتکب گناهان شدیدی شدند که موسا مجبور شد هم کاهن باشه و هم نبی او به بالای کوه سینا می‌رفت و به عنوان کاهن اونها نزد خدا شفاعت میکرد او دعا میکرد خدایا لطفا اونها رو ببخش لطفا اونها رو ببخش موسی چنان در نظر خدا خاص بود که خدا ده بار اونها رو بخشید در باب چهارده شما یکی از مهیب ترین باب های کتاب مقدس رو میبینید موسی هم در کوه سینا بود و دعا میکرد خداوندا، لطفا قدرت خودت رو با صبرت و با بخشش گناهان ما و ابراز محبتت نشون بده ما رو ببخش هر چند که گفتی گناه بی عجر نخواهد ماند و تو پدران و فرزندان رو تا نسل سوم و چهارم جزا خواهی داد خداوندا تمنا می کنم گناهان این قوم رو ببخش به خاطر شکو و محبت دائمی همونطور که از زمان خروج از مصر همیشه اونها رو بخشیدی حالا حیرت انگیز اینه که خداوند گفت بر حسب کلام تو آمرزیدم لکن به حیات خودم قسم که تمامی زمین از جلال یهو و پر خواهد شد چون که جمیع مردانی که جلال و آیات مرا در مصر و بیابان نمودم دیدن مرا ده مرتبه امتحان کرده آواز مرا به درستی که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خوردم نخواهند دید و هر که مرا اهانت کرده باشد آن را نخواهد دید فقط یوشه و کالی به جازه دارند که وارد سرزمین وعده شوند اما اطفال شما که درباره آنها گفتید به یغما برده خواهند شد ایشان را داخل خواهم کرد و ایشان زمینی را که شما رد کردید خواهند دانست. لکن های شما در این صحرا خواهد افتاد و پسران شما در این صحرا چهل سال آواره بوده و بار زناکاری شما را متحمل خواهند شد تا لاشه های شما بر صحرا تلف شوند. و اینگونه بار گناهان خود را چهل سال متحمل خواهید شد و مخالفت مرا خواهید دانست. چه پشیمانی در تمامی اردوگاه بود وقتی که موسا سخنان خدا را برای قوم خدا گزارش میکرد. اونها روز بعد بلند شدند و به سر کوه برآمده گفتند اینک حاضریم و به مکانی که خداوند داده است میرویم زیرا گناه کرده ایم. اما حالا آماده ایم که به سرزمینی که خدا داده بریم. اما موسا گفت دیگه خیلی دیره. شما از فرمان خداوند سرپیچی کرده اید. به بیابان برگردید با نخشه خودتون جلو نرید زیرا خداوند در میان شما نیست. مبادا از پیش دشمنان خود هزم شوید. از بسیاری لحاظ این باب ترسناکترین باب در کتاب مقدسه. این باب به ما چیزی درباره رابطه ما با خدا میگه. من میخوام روی این بسیار تاکید کنم. این اشارهای تمثیلی به نجات اونها نیست. اشارهای تمثیلی به نجات اونها مربوط به درخواست موسی برای آمرزش گناهان اونها بود. و خدا میگه موسا من اونها رو خواهم بخشید. هیچ شکی در مورد بخشش اونها نیست. اونها رو خواهم بخشید. اون نجاته. اما زندگی مسیحی چیزی بیش از اینه. زندگی با ایمان، زندگی روحانی متفاوت از بخشش ماست. همین طور اعتماد کردن به خدا و خدمت به خدا و وارد شدن در چیزی که او برای ما داره جلال دادن به خداست. این چیزیه که اینجا به تصویر کشیده شده کتاب مقدس میگه خدا از نجات ما منظوری داره و اونها اون منظور رو از دست دادن پولوس رسول اونو اینجوری شرط داده ما با فیض به واسطه ایمان نجات یافتیم به قول پولس ما با اعمال خوب نجات نیافتیم بلکه ما برای کارهای خوب نجات یافتیم که خدا از پیش مقدر کرد که در آنها گام برداریم پولس میگه ما صنعت دست او هستیم که در مسیح عیسی برای اعمال نیکو ساخته شدیم که خدا از پیش مقدر کرد که ما اونها رو انجام بدیم به عبارت دیگه خدا از نجات من و شما منظوری داره خدا میخواد که ما وارد اون منظور نجات خودمون بشیم سرزمین وعده تمثیل این حقیقته خدا خیلی خیلی صبوره بی اندازه صبوره خدا فیض زیادی داره اما ایمان دارم که باب چهارده اعداد که قلب این کتابه به ما میگه که چیزی هست که با مرحله تصمیم گیری ما ارتباط داره. مرحله تصمیم اون جایی که ما تصمیم میگیریم بعد از اون همه فیض و صبوری فراوان آیا میخواهیم وارد اراده خدا برای زندگی هامون بشیم یا نه؟ من شیفته هواپیما هستم. من از نظر فنی زیاد وارد نیستم. اما شیفته اینم که بدونم هواپیما چطور پرواز میکنه. مخصوصا یه 747 بزرگ. من نمیتونم درک کنم که چطور یک هواپیمای قول پیکر از روی باند بلند میشه. یه روز با خلبان یه هواپیمای 747 جلسه مشورتی داشتیم. من شیفته صحبتی شدم که داشتیم. او چیزهایی راجع به این هواپیمای بزرگ به من گفت و اینکه پرواز کردن واقعا چه حسی داره. او درباره فرود آمدن 747 صحبت کرد. او گفت وقتی که شما فرود میایید یکی از اون اهداف بزرگ اینه که جایی پیدا کنید که بتونید اونجا فرود بیاید اونها به اون استلاحاً الڈی یا مرحله تصمیمگیری میگن وقتی که به مرحله تصمیمگیری رسیدید نمیتونید از فرود آمدن خودداری کنید نمیتونید در هوا معلق بمونید باید فرود بیاید حتی اگر فرود موفقی نداشته باشید اما ناگزیر هستید فرود بیاید اعداد 14 از رابطه ما با خدا حرف میزنه دوباره تاکید میکنم که این ربطی به نجات ما نداره اساس نجات فیض هست نه اعمال یا خدمت ما اما به این ربط داره که ما اراده خدا رو در زندگیهامون بدونیم به چه منظوری خدا ما رو خلق کرده ایمان دارم که شما هم به مرحله ای می میرسید که خدا خودش رو ده بار به شما ثابت میکنه شاید ده بار سعی کنه شما رو وادار کنه که اراده او رو ببینید و شما رو تشویق کنه که اراده او رو انجام بدید اما این حیرت انگیز میگه که شما به جایی میرسید که خدا میگه بسیار خوب، دیگه کافیه، دیگه کافیه. در رومیان باب یک، پولس همین جمله رو سه بار تکرار میکنه. او میگه خدا اونها رو رها کرد. پولس نمیگه که خدا اونها رو رها کرد. خدا هرگز انسان رو رها نمیکنه. اما خدا انسان رو در تمایلاتش رها میکنه. خدا به ما قدرت تصمیم گیری داده و اراده ما رو تحت فشار قرار نمیده. اراده آزاد برای خدا خیلی مقدسه. خدا ما رو با قدرت تصمیم گیری خلق کرده. اگرچه خدا هر کاری رو که میتونه خواهد کرد تا ما رو وادار کنه که اراده او رو ببینیم و انجام بدیم. خدا به جایی میرسه که میگه بسیار خوب. به راه خودت برو. اگه این چیزیه که تو میخوای باشه به راه خودت برو. من کس دیگه ای رو پیدا میکنم که کار منو انجام بده. زیر این خط بکشید. او همیشه این کار میکنه. در کتاب استر، استر معموریت یافت که قوم یهود رو نجات بده. قوم یهود قرار بود توسط پارسیان نابود بشن. اونها نزد استر رفتن که ملکه پارس شده بود. خدا قومش رو مثل یوسف در مصر و دانیال در بابل و موسا در قصر فرعون و استر در مقام ملکه در دربار امپراتور فارس قرار میده وقتی که قوم یهود با کشتار مواجه شدند، نزد استر رفتند و گفتند ای استر برو و نزد امپراتور برای ما شفاعت کن حالا اگه شخصی بدون دعوت به حضور امپراتور فارس میرفت اگه او چوگان زرین رو به سوی اون شخص دراز نمی کرد او رو می و گردنش رو می زدن. استر این رو به اونها گوش زد کرد او گفت امپراتور سی روزه که ما رو به حضور نخونده و امکان داره سرم رو برباد بدم. اموی او که مرد خدا بود به او گفت. در دل خود فکر مکن که تو در خانه پادشاه به خلاف سایر یهود رهایی خواهی یافت. بلکه اگر در این وقت تو ساکت بمانی راحت و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد. اما تو و خاندان پدرت حلاک خواهید گشت. و کیست بداند که به جهت چنین وقت به سلطنت نرسیده ای؟ استر یک نمونه و مثال هست. استر گفت به تمامی یهودیان بگویید که سه روز برای من روزه گرفته بود دعا کنن و من نیز با کنیزانم روزه خواهیم داشت و به این ترتیب نزد پادشاه داخل خواهیم شد اگر چه خلاف حکم است و اگر هلاک شدم هلاک شدم او جانش را بر سر این کار گذاشت و نجات قوم خدا توسط او حاصل شد به اعتقاد من کاربرد داستان استرینه اگر شما اراده خدا را انجام ندید خدا بازنده نخواهد بود خدا به شما نیازی نداره او کارش رو توسط شخص دیگه ای انجام خواهد داد، کارش رو به روش دیگه ای انجام خواهد داد. نپرسید که اگه من اراده او رو به جااررم خدا چطور ارادهش را انجام خواهد داد. خدا کار خودش رو خواهد کرد او به شما نیاز نداره. خدا به هیچ کس نیاز نداره. شما بازنده میشید و بالاخره ضررش رو خواهید دید. اگه به جایی رسیدید که بهش مرحله تصمیم گیری گفتیم، جایی که برای خدا روشن بشه که، شما اراده او رو انجام نخواهید داد، خدا از شما برمیگرده و شما زرر خواهید کرد. باب 14 اعداد شامل آیات قمنگیزیه. قمنگیز ترین آیات کتاب مقدس. این باب به ما میگه که مردم صبح روز بعد سلاحاشون رو برداشتند و آماده شدن. اما موسی به اونها گفت که خدا به او چی گفته؟ وقتی مردم گفتند حالا ما آماده ایم که بریم این کلام ترسناک را از موسی شنیدن. دیگه خیلی دیر شده. سلاحاتون رو بذارید زمین. شما از خدا جدا شدید و خدا در بین شما نیست. من فکر میکنم این خیلی وحشتناکه. به اعتقاد من این پیغامی وحشتناک از کتاب اعداده این مردم چهل سال در بیابان سرگردان شدند. شما چند سال در بیابان سرگردان بوده اید؟ چند وقت پیش تجربه نجات وارد زندگی شما شد؟ کی بود که خدا شما را از مصر روحانیتون نجات داد؟ کی بود که خدا سرزمین وعده شما رو بهتون نشون داد؟ خدا چه مدت سعی می کرد اراده خودش رو برای زندگیتون نشون بده؟ چیزی که پولوس رسول بهش میگه اراده نیکو و مقبول و پسندیده خدا. خدا برای هر کدوم از ما اراده نیکو مقبول و کاملی داره. هر کدوم از ما وقتی خلق شدیم خدا از الگو استفاده نکرد. هیچ کسی مثل شما نیست و شما هم مثل کسی دیگه نیستید. این نقشه خداست. خدا نه تنها شما را منحصر به فرد خلق کرد بلکه نقشه ای منحصر به فرد برای زندگی شما هم داره. او میخواد کاری با شما بکنه که منحصر به فرد و مختص شماست. مهم نیست که شما کی هستید یا عتیقه مخصوص شما چیه ؟ حداقل در این زندگی وقتی خدا شما را نجات داد منظوری از نجات شما داره. نجات مربوط هست به زندگی آینده او شما را تا ابد نجات داده. موقعیت ابدی شما بسیار مهمه ولی به هر حال خدا در زندگی فعلی شما هم منظوری از نجات شما داره. خدا شما رو نجات داد چون کار خاصی داره که میخواد شما انجام بدید. به پولس رسول فکر کنید خدا به پایین نگاه میکنه و میبینه که او یکی از دشمنان مسیحه، شعول ترسوسی، مسیحیان رو آزار میرسونه. او عملاً مسیحیان رو نمیکشه اما اونها رو دستگیر میکنه، تبعید میکنه، و تحویل میده تا اعدام بشن. خدا میبینه که او مردم رو دستگیر میکنه و تسلیم مرگ میکنه. اسم او لرزه به قلب مسیحیان میندازه. خدا به این شاول ترسوسی نگاه میکنه و میگه من برای این مرد نقشهای دارم. از این رو شاول رو در راه دمشق نجات میده. بعد خدا نزده حنانیای پیر میره و به او دستور میده که شاول رو تعمید بده. حنانیا به خدا یاداوری میکنه که شاول دشمن کلیسا خدا نقشه‌اش رو برای پولس به هنانیان نشون میده و میگه برو زیرا که این مرد ظرف برگزیده من است تا نام مرا نزد غیر یهودیان و پادشاهانشان و قوم اسرائیل ببرد. خدا همیشه نقشه بزرگی برای شاول ترسوسی داشته. تعجبی نیست که پولس رسول بر این حقیقت تاکید میکنه که باید از تجربیاتمون بفهمیم که اراده نیکو مقبول و کامل خدا برای ما چیه. انجام اراده خدا پیغامه کتاب عداده. وقتی به کتاب اعداد می‌رسید دنبال حقیقت بگردید شما این حقیقت رو خواهید یافت که تمثیلی جالب و ترسناکه اون حقیقت می‌تونه حقیقتی هوش‌دهنده باشه و به این منظور در کتاب مقدس آمده. وقتی به باب چهاردهم کتاب اعداد می‌رسید تصویر مرحله تصمیم گیری رو می‌بینید که همه ما باید به اون مرحله برسیم اون جایی که ما باید تصمیم بگیریم که آیا اراده خدا را در زندگیهامون انجام خواهیم داد یا نه؟ شما چی؟ آیا تا حالا به خدا برای عطیه نجات و بخشش گفتید نه؟ اگه گفتید، امروز بگید بله. اگه قبلا به بخشش و نجاتش، بله گفتید اما برای اراده اون نمیگید، امروز بگید بله. شاید هنوز دیر نشده که بفهمید اراده نیکو مقبول و کامل خدا برای زندگی شما چیه و وارد سرزمین وعده خدا که برای شما مهیا کرده بشید دوستان آیا شما از تجربه بیابان زندگیتون رنج میبرین؟ اگر اینطوره از خودتون سوال کنید که آیا من تماماً مطیع خدا بودم؟ همونطور که امروز معلممون گفت اگر از اراده خدا سر باز بزنیم ما ضرر میکنیم و اگه ما اونقدر از انجام اراده خدا خودداری کنیم و به اون بگیم یقیناً تا عبد زرر خواهیم کرد. عزیزان، خیلی خوشحال هستیم که در مسیر مطالعه کلام خدا با ما همراه بودین. متشکرم که دانشجوی وفاداری هستیم. ما به مشارکت و دعاهای شما عرج می نهیم. اما شما را تشویق می کنم که از کسان دیگه هم دعوت کنید که در این درسها به ما بپیوندن. چرا یک دوست یا فامیلتون رو دعوت نمیکنین؟ اونا هم میتونن در طی این مطالعه کلام خدا برکت بگیرن و باعث بشن که کلام خدا ما رو هم برکت بده. تا برنامه بعدی خدا به شما برکت بده و خانوادی شما رو در دستان مهربانش حفظ کنه.